بسم الله الرحمن الرحيم درس بعدي جهه است اعراب الاعراب هو تغيير اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا او تقديرا يفرم هذا اعراب و تعريف مكن هذا تعريف تون تعریف لغوی شبانی آشکار کردن بیان کردن اعربا قلقه یعنی پریشانیش رو آشکار کرد ظاهر کرد بیان کرد اما این تعریف اصطلاحی هست اعراب هو اعراب عبارت است از تغییر او اواخر کلم تغییر دادن تغییر کردن آخره کلمه منظور آخر کلمه حروف کلمه حالت کلمه از رفع به نصب از نصب به جر پس تغییر او کلم اگر گفته بود تغییر احوال آواخر کلم بهتر می بود ولی خب معنا از این هم آشکار هست تغییر و تغییر کردنه. آخر کلم تغییر کردن یا دادن آخر کلم لاختلاف العوامل داخلت علیها نه خود به خود نه به اختلاف عواملی که برون کلمه بیایند عامل که تغییر کرد ایرال هم کار میکند؟ زدن آلمل ان زدن آولکان زدن آ من تغییراتی در داخل این جمله اومد کلمات. و این تغییر براساس چی بود ؟ براساس آمل. ما میدونیم که بعضی از کلمات در زبان عرب عامل هستند یعنی در کلمه بعد از خود کار میکنند عمل میکنند یا منصوبش میکنن یا مرفوع یا مجرور یا مجزوم ولی عملی انجام میدهند میگه اعراب اون تغییر آخر کلمه ای هست که اون تغییر بر اساس چه باشد بر اساس عامل باشد نه اتفاقی و خود به خود لفظن حالا این تغییر یا لفظی باشه مانند زیدن آلمون این زیدن آلمون کان زیدن آلمون یا تقدیری باشه یا باشه مانند موسا آلمون این موسا عالمون. کان موسا آلمون در کلمه موسا ما میبینیم که تغییر یک تغییری تقدیری است تغ... تغییری لفظی پس اعراب که ما میخوام یادش میگیریم در کتاب نهو تغییر آخر کلمات هست تغییر آخر چه که این تغییر بر اساس عواملی است که بر اون کلمات وارد میشه بر اساس عاملی است که بر اون کلمات وارد میشه و اون تغییر یا است یا تقدیری بعدا خواهیم خواند که کدوم کلمات اعرابشون تقدیر لفظیست و کدومها تقدیری از اون جایی که ما قبلا این کتاب رو تدریس کردیم اعراب تقدیرون رو در مطل نیاورده شایسته میدونم اینجا ذکر کنم ببینید کلمات منقوص مقصور و مضاف بیای متکلم اعرابشون تقدیری هست مقصور مانند دنیا موسا ایسا علف مقصوره دارند اینا عربشون تقدیریست است. که مگیم موسا عالمون میگیم موسا مبتدا مرفوب و تقدیر زنبه مبتدا مرفوب و تقدیر زنبه نعراب مقصور ها چیست؟ تقدیریست همچنین منقوص ها منقوص اون هست که آخرشیا باشد و ما قبلش کسره مانند القاضی ادائی الرامی جا القاضی دیگه نمیگیم القاضی و زمه نمیدیم میگیم اینجا زمه تقدیری هست و همچنین کلمه ای که مضاف بیا باشد صدیقی آلمونه دوست من عالم هست خب اینجا صدیق مبتدا هست ولی زنبه کجاست تقدیری هست پس اونایی که الف مقصوره دارن های منقوس و مضاف بیا متکلل بیای ای اینا ایرامشون تقدیری است حالا گرچه اسم منقوس اسم در حالت نصب فقط اعرابش ظاهریه ان قاضیه، ان قاضیه ولی مقصور در هر سه حالت رفع و جر چون اسم مجزوم اصلا نمیشن مرفوعیه تقدیریه و منقوص در حالت نصب ظاهریه در دو حالت دیگر تقدیریه و مضاف بیای متکلم در هر سه حالت تقدیری است. در میان فعل ها که بعدن خواهیم خان در معتلاقص دوباره چون فیل مزاره موربه مبنی نیست جز دو سیخه شلوته بعدن خواهیم خواند که در چه زمانی و چه حالاتی اعراضش تقدیری خواهد بود پس این بود تعریف چه؟ تعریف اعرابه این بود تعاريف اعراب اما و اقسامه اربعهن اقصار اعراب چند تا است رفعن رفع رح و نصبون نصب و خفض خفض یعنی جر و جزم مجز جز ببینید ما چهار تا اعراب داریم تمام کلمات عرب اونایی که در کلام ترکیب شده اند یا مرفو هستند اونایی که اعراب دارند یا منصوب یا مجرور مخفوظ یا مجزوب جسم از این چهار حالت خارج یا رفع یا نسب یا جر یا جسم اینا شدن با هم چار تا با هم شدن چند تا میان این چارتا تا فلی من ذالک الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها میگه اسم ها از این چهار تا اعراب رفع نصب و خف رو دارن لا جزم فيها اسم ها جزم نداره اسم ازون نمیشند. هیچ کجا ما ندیدیم بگن این اسم اینجا مجزومه پس از چهار تا که داریم سه مخصوص چی میباشن ستا اسم فقط ستا رو با کلمه دفیق سر بگویم اسم فقط ستا رو میتنسیرن رفع نسب جر و اسم مجزون نمی شود ولی افعال من ذالک الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها اما افعال اما افعال فقط ستا اراب دارن چند تا؟ رفع نسب و جزم، پس فعل چند تا اعراب از این چرطه رفع و نسب و جزم ولا خفض فیها و جر در آن نیست فعل ها مجرور نمیشوند. پس تعریف اعراب رو خوندیم و خاندیم که اعراب بر چارلو هست رفع نسب جر و جزم از این چهارتا اسم ستا رو میپذیرد رفع و نصب و جر و جذب رو نمی و و ستا رو می پذیرد رفع و نسب و جذب و, و, و, و, و مجرور نمی شه چیز زیبایی نگفته؟ خب حالا حالا این نقطه رو باید دانست که